16. هم. خودتان را هر سال بازافرینی کنید ما در دوران بزرگترین تغییرات در تاریخ بشریت زندگی می کنیم اوزا در همه زمینه ها و همه جهات اونقدر سریع تغییر می کنه که باید دائما در حال بازسازی و بازافرینی خودتون و زندگیتون باشید حداقل سالی سال یک بار عقب بیسید و به تمام جنبه های زندگیتون نگاه کنید تا معلوم کنید آیا این چیزیه که می ادامش بدید یا نه. یک لحظه تصور کنید که شرکتتون در آتشسوزی نابود شده و باید به ساختمان دیگه ای برید و از اول در اونجا شروع کنید چه چیزی رو بلافصل شروع می کردید؟ چه چیزی رو اصلا شروع نمی کردید؟ چه کسی رو با خودتون به ساختمون جدید می آوردید تا بهکار کردن در شرکتتون ادامه بده اگه حق انتخاب داشتید چه کسی رو جا میگذاشید و دیگه نمی آوردید؟ تصور کنید که شغلتون صنعتتون و کارتون ناپدید شده؟ تصور کنید کارتون رو دارید از اول شروع میکنید و میتونید به هر جهتی برید و عملا هر کاری بکنید چه چیزی رو انتخاب میکردید محل زندگی و ای که خونوادتون اوقات فراغت و تعطیلات رو میگذرونند رو ارزیابی کنید وضعیت مالی و جسمیتون رو بازسنجی کنید اگه میتونستید مثل نقاشی که جلوی یک بوم سفید ایستاده هر یک از قسمت های زندگی و کارتون رو از اول شروع کنید چطور زندگی امروزتون رو ترراهی و بازافرینی میکردید وقتی به طور منظم عقب بیستید و از این دیدگاه ها به زندگیتون نگاه کنید شروع میکنید به دیدن انواع و اقسام فرصتها برای تغییر کاری که میکردید تا با چیزی که واقعا میخواید همساستر باشید این کلید واقعی افزایش کارایی